د افغانستان اسلامی امارت د شریعت جغ راډیو روشتساعته یې د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اوریدلی سئ تاسو د شریعت زا راډیو ته غوږ یاست دا د شریعت زا راډیو ده دادس دادس با ترانی اکبر قدر منو کو. اسلام دا دس اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو دا شریعت رادیو خبرونی له هم د شپ فایل سی پنانن رادیو مجله کی دا خبرونو او سیاست تبصره ترچنگ یا وپذرپوری ترانا ترانه هم وړاند کېږي لولا است سپام د قرآن عزیم شان در سومباره قایط تلاوت او. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب كافرانه دنياي جونخ كلي شوي او بهغ خلق ملندي وهيشي ايماني راواي حالدا تشا جان ساتنه وكدا نو دقيامت پرز بلدوي او چتوي او الله چچا او واڑی به حساب روزی ورکوی کوي می له عوف بن مالک اشجعي رضی الله عنه څخه روایت دی هغه چې زه له زید ابن حارثه رضی الله عنه سره یو ځای د موطع غذا ته په لاره کې سره را د یمن یو اوسېدونکی ملګری سو چې د مسلمانانو د لپار راغلی و له هغه سره له تورې پرته بل څه نه وو چې مخکې ولاړو نو د رومي لشکر سره مخامخ سو موږ چې مخکې ولاړو نو له رومي لشکر سره مخامخ سو په هغوی کې یو سړی پر سر آس باندې سپور وو ده هغه د آس زین پسرو زر ورش سوی وو او په وصله کې هم سره زر استعمال شوی وو د میل مسلمانانو سره ډیره سخت جګړه کوله او مسلمانانو ته ډیر زیان ورواړه وو دا یمنی مجاهد ورته د ویلوې ډبرې تر شا ځان پټ کړ کله چې د د هغه له څنګه تیر سو نو یمنی سم د لاسه پر هغه حمله وکړه او د هغه د آس پرې پرې کړې هغه له آس و یمنی ور ور سو او مړ یې له هغه پاتې سوی آس او وسله یې کله چې الله جله مسلمانان مسلمانانو ته بری ورکړ نو خالد ابن ولید یمنی ته یو سړی او دغه دواړه یې ترېنه واخیستل عف چې خالد ابن ولید رضی الله عنه ته ورغلم او ورته ویل چې آیا تا ته دا نه معلوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې فیصله کړې ده چې کله یو مسلمان کافر ووږني نو د هغه مال د قاتل حق دی هغه رضی الله <سؤال> عنه وویل هو زه خبر یم شیده دا زږته ډیر دی ما ورته یا به ورکوي او یا ستاش ستا شکایت د رسول الله صل الله عله وسلم په کوم خالد رضي الله عنهو له ورکولو انکار وکړ او رضي الله عنهو کلچ کله چې د رسول الله صل الله عله وسلم په خوا را راغونډ سو نو مرستندوی کسا رسول الله صل الله عله وسلم ته وکړه او د خالد الله عنهو له هم خبر کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم خالد رضی الله عنه تا تداکار ولی کړي دی هغه ورته یا رسول الله زما په ګمان دا ډیر وو زکه متر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم ورته فرمایل خالد تا چې تری نه دی هغه بیرته ورکړه د دې حدیث روایت مسلم او ابو داود کړي دی دا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا نن د سه شنبې ورځ د زوسهېم د د میاشتې دوولسمه چې د دوه زهالسم کال د د میاشتې له شلمې سره د نن ورځې خپرونې میلیاس هر کلای کوم په پیل <سؤال> کې د خبرونو سر ټوکو د هلمند ولایت په ګریش کې د یرغلګرو په بمبار کې د یوه کور اته تنه شهیدان شول د هرات ولایت په شین کی کې ټنګ ویجار څلور تنه مزدور اسکر قتل او درې تنه نور شول د سریپول ولایت په سنگی چارک کې پنځه اربکیان مجاهدینو ته تسلیم شول د پاریاب ولایت په پا قیصار کې یو تنه اربکۍ قومندان له خپلو څلورو ملګرو سره مجاهدینو ته تسلیم شو د غزنی ولایت په شلګر کې د مزدورې اردو ټنګ شپاشتا ن گڈاگانو او جل شوال ویرے هم گورا د هیل ولایت د ګریشک ول اسپلی ار 1 د قلاګس پسیمکی امریکایي و کور بمبار وکړ چې لاملای د یاد کو راته نغړي د و ماشمانو پشمول شهیدان او کور کو له خاور سره خاورې شوی ان لله و انا الیه رجون هم ز د یاد ولایت د ناوی ول اسپلی ار هجی جنگ غا پسیمکی پرون مازیګر څلور بجې د مزدور رربکانو پر ډاکټر موتر موټر د کومن پتراتس کې وسلوال برې تر شو د برید په پایلې پا کې موټر تخریب او پکسپاره درېته نه مزدور څنګه لريار ته مرګ جوړ بلواښته از بیگاش په درې بجې د هم دی ولایت د مرکز لشکرگاه ار د ختیځ دروازې د اول شش کې د مزدور پولیسو په پوستا د سپکو او درنو اسلو په مرټ بریده نشه شول له لږ مقاومت ورسته پوسټه پته او په میشت مشت څلورته نه مزدور پولیس ته قتل دوه تنه نور شول له دښمن څخه یو کارملي ټوپک او نور مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلی دي په پیشکی کې یو تن مجاهد هم زخم شوای همدار د داید مرکز اړوند د څلورمه حوزې د شمالني پسمه کې د مزدور اردو د پوستو د تن مزدور اسکر د درسکوب په ماتو وشتل شول یو بل خبر واي چې د هم دیویلایت ولایت د نادالی ولسوالی اړوند د هزارگانو د پارچوي پسیمکی کې د مزدور اسکر په پوسټا د لزر په تر شو چې پکې درې تنه اجر اسکرو ته مرګ جو واوښته د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ اړوند د ازیزآباد د سیرایک په سیمه کې د کمین پترسکی کې پرون سهار دوه مزدور اسکر ووژل شول همداراز د یاد ولسوالۍ اړوند د عزیزآباد انتن په سیمه کې د مزدور دښمن یو ټنګ د خښ کلای شوي مین په مټ ویجاړ او پکسپاره پا دوه تنه مزدور اسکر ځای پر ځای قتل درې تنه نور ژوبل د سریپول ولایت د سنګې چارک ولسوالۍ اړوند د تبر په سیمه کې تېره ورځ د حقایقو په در کولو سره د اسلامي مرات مجاهدینو ته تسلیم شول نوموړو کلک هوټ څرګند کړ چې نور به هیڅکله د مزدور ادارې لیکو ته ورنه شي بلکې تر خپل وس به د اسلامي عمارت مجاهدینو همکاري ته دوام ورکوي د پاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ اړوند د بالابام په سیمه کې تېره ورځ قمندان رحیم الدین له خپلو څلورو ملګرو سره د حقایقو په در کولو دا استامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو نمول له ځان سره یو پیغام درې کله شنکوپونه هم مجاهدینو تررسولې چی د مجاهدینو له لورې درن د استقبالو شو نو کلک کلا کوڅه چی نور به د ژوند تر پای د استامي امارت مجاهدینو هم کاری ته دوام ورکوي هم درځ دایت ولایت شینتګابول اسفالی مرکز کې مختن نه بجی د مزدور دښمن پر دیپای پوسټه واستوال برید سره شو د برید په پایلې کې څلور او د مزدوري اردو اسکر ځا پر ځای قتل او یو بل بل شو د غزنی ولایت شلګر و سفالی ار 1 کې د مزدوري اردو قرارګاه ته سیرم مجاهدینو د کمانډو اسکر په ټانک د ماين چودن وکړه د دوی چودن لاملا د دښمن ټانک وجاړه او په کې ناست پنځتنه مزدور اسکر زی پر ځای و شول همدارنګه پرون سهار لس بجې د یادې ولسوالی چاردیوال سیمه کې هم مجاهدینو د ګوډګیو اردو په محاسره قرارګاه د سپکو او درنو اسلو برید ترسره کړ چې له امله یې په زیان سربیره یو تن مزدور اسکر هم جل شو د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالی اړوند پرسای باغ سیمه کې د ایوس په نوم یو تن مزدور اربکۍ د مجاهدینو له لورې په برید کې په او ځای پر ځای شو نو د خوګانو ول سفلی ار 1 مملي اوسیدونکې وو دغرس مزګر پنځه بجې دایې ول قلای بختان سیمه کې د اردو دوه رینجر موټر د مجاهدینو لخوا د ژپد چوي مین په مرچاو د نترسر شوه چې په ترڅ کې د دشمن رینجر انجن وچاړ مزدور اسکر قتل او د وطن نور جو بل شول له مجاهدینو سره د پیوستن په اړه کی 13 ورځ مازیګر د پکتیکا ولایت خواه و په مربوطات کې څلور تن اربکان مجاهدینو ته تسلیم شول تسلیم شو کسان ویل چې په حقیقتونو تر پوهیدو ورسته امریکای مزدور ادارې څخه د اقدام کړي او غواړي آزاد ژوند وکړي دوی نورو ځوانانو ته هم په خپل پیغام کې چې خپل خور ژوند د امریکا تر نه قربانوي او د قپس له ژونده دي ازاد ژوند تر لاره وباسي د کندهار ولایت په هوایي اډه بېګا ماخصوطا نه بجې د یرغلګرو پر مهمه ځاله توغندیز تر سره شو توغندي په اډه کې دننه په نښه شوي هدفونو لګېدلي چې له میدان کې د اور لمبیره پورته شوي همداراز مجاهدینو د توغندیو توغولو په ځای کې په هغو د تکتیقي مینونو په مټه تر سره کړې چې د پیش ځای ترا ورسیدل. د 14 لملای رغلګرو تم مرګجو بلا وشت خو کرشمیراین نه د ترلاسه شوي هم از د شولې کوټ ولسوالی اروند د باغده سرې د هوټلانو پسې کې د مزدور عسكر په کاماز غټ موټر د مایندرنه 14 وشوه چې لملای کاماز موټر ویجاړ په کسپاره مزدور اسکر ملاوجو جو بل شول هم درز د بدغس ولایت د سنگتې شولسوالی اروند د چلګزي پسې کې د مزدور د پوستې هغه اسکرو چې له موټر چلونکو څخه به په پا زوره پیسې اخستلی د ملکي خلکو په یو ډک موټر باندې ډزې وکړې د ډزو په پایله کې یو تن هیوادوال شهید شو اینا لله و انا الیه رجون هم د یاد ولایت د مرکز اړون د لامان په مکی کې پای شپه بجه د مزدور دشمن پر دیپای پوسته وسلوال برید ترسره شو بریت چې په کسپکې او درنې وسلې کارول شوي کابوی یو نیم د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه پتحه او مزدور قمندان وارث له ملګرو سره ځای پر ځای قتل پاتې یې په په پوسته کې له دښمن څخه یو کلاشینکوپ پنځه ارادې او ګن نور مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلی دي د پرا ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اړوند د شیوان په کې په هغه سیمه چې بېګا شپه د مزدور دشمن یو ټنګ جاړه او پکسپاره مزدور اسکر وژل شوي ناتاره چې له امله کلوال دوه پر ځای شهیدان شول د یاد ولایت د ګلستان ولسوالۍ ده د کنده هر پر لویه لاره د توت د سیمې که څلور تنه ده د خوب په در کولو سره د جلبوجزاو کمیسون په حلو جلو د اسلامي عمارت مجاهدینو ته تسلیم شول نوموړو کلک هوټ څرګند کړ چې نور به کله د ګوډاګي ادارې لیکو ته ورن شي بلکې د ژوند به د اسلامي مرات مجاهدینو همکاری ته دوام همداراز د یاد ولایت د بالابلوک ولسوالۍ 1 د شیوان په مکی پر د مزدور اردو په موټریز کاروان د خشکلشی کړای په مند په مټ چاودنه شوه د چاودنې له امله ټنګ ویجاړ او پکسپاره مزدور اسکر ځای پر ځای شول د چاودنې په ځای کې له مزدور دشمن څخه یوه جلسي ټوپک او څلور لاسي بمونه هم ترلاسه شوي وروستی خبر دا چې د یاد ولایت د مرکز R1 د نمایندگی په سیمه کې پرون سهار یو تن مزدور پولیس د غلچکی بریت په ترڅ کې ځای پر ځای و شو هم پرون غرمد بولس بجې د پراشر ار 1 لیوا باندې توغندیز بریت تر سره شو دوه توغندې په لیوا کې دنن په هدف لګیدل چې لاملای مزدور دښمنتم مرگ جوړ بلاوښتي د خبرونو پای د شریعت رادیو امریکا دشمن دین خاک و ملت ماست جنگ تحمیلی 18 ساله امریکا دلیل این ادعای ماست اسلامی امارت گرٹون قیده اسلامی امارات پر ګران هیواد د امریکایي یرغل له پیل څخه د اشغال ضد مبارزه شروع کړې په خپل بیسارې جرأت تدبیر او متانت سره دشمن دښمن ته ثابته کړی چې په کې پراخې ژورې او نشي لیدونکې رشي لري او اسلامي عمارت یوه ډله نه بلکې یو لوی ولسي او بنسټ دی دشمن د اسلامی امارات پر ضد پراخ من فی تبلیغات وکړل وحشانه پوځی عملیاتی تر ترسره کړل او هر ارخیز بندیزونه یې پرې خو اسلامی امارت د د الهتعالی په نصرت د افغان ولس په ملاتړ او د مشرتابه په بی سارې اخلاص او تدبیر سره د دې ټولو فشارونو او بندیزونو څخه کامیاب او سر لوړی راووت کابل رژیم تل د یرغلګرو په امر د اسلامی امارت په مشري روان جهاد پردیو ته منصوب د واقعیتونو څخه یې څرګنده او د سولې دروغجن شعارونه پورته کړي اسلامی امارات په مختلفو نړیوالو کنفرانسونو کې د سولې په اړه پا خپله پالیسی وړاندې کلی او د سیمې او نړی د مهمو هیواودونو لور هر کلی شوی. لنی که مرغه په دې وروستیو کې يرغلګرو هم څه واقعیتونه درک کلی. د اسلامی امارات سره یې ابتدایي خبرې کړي او د رواني معزلي سولې حلتې اسلامی امارت پخپل سره د يرغلګر و اندیشنې او غلط فهمی زواب کلی او تینگاری کلی چې تر به بخپله رواني جهادي مبارزت دوام ورکووي چې يرغلګر په یو لگران ګران هواد افغانستان څخه وځي د اسلامی امارت مشرتابه د امارت له تاسیس څخه تر اوسه بار بار ثبته کوي چې د ګران هواد پخپل واکۍ او ملی منافعو په هیڅ ډول له هیڅ جهاد سره سودا ونه کړي د مظلوم لس او په سنګرونو کې د میشتو اتلو مجاهدینو د ارمانونو تحقق ته به ژمن پاته کېږي د دشمن د هر ډول فشارونو په وړاندې به کمزوری دریځ نه غوره کوي او د خپلې سوچه اسلامی او ملی داعیې او پاک هدف د ترلاسه کولو په لار کې به له هیڅ ډول قربانۍ څخه ځان اسلامی امارات په سیاسي ډګر کې هم د نظامي میدان په چیر اشغالګر او داخلي اجراني پرګونډو کړي د دشمن له و اهداف یې پردا پورته کړي او د افغانستان او افغان ولس پرزید د يرغلګر او داخلي دشمن ګڼ تخریبي پلانونه یې خنسا دی. دی موږ باور یو چې درواني معزله په هر بعد کې د افغان ولس په نمایندګي اسلامی امارات جوړون کیدی. ان شاء الله تعالى افغانستان د مطبوعاتو په هنداره ک درنو او قدرونو اوریدونکو د خبرونه پدې برخه کې د افغانستان په اړه د شمیر چاپي او آنلاین رسنیو غوړچند در اوو او چې تازه چاپ او نشر شوي قدرمون قدرمن اوریدونکو په دې ورستی کې امریکایي جنرالان یو په بل پسې په افغانستان کې د دوی د او د طالبانو د بریا اقرار کوي. چې دازل د امریکا د درستیزانو د مشر جنرال جوزوب دنپورد هم اقرار کړی او ویل دي چې طالبان اوس مهال بایلونکي ندي. عظم آنلاین وی په پیو تازه خبر کړي مقاله کی لیکلی طالبان دی د دا جنرال ډن خبرو ته وی پانی لیکلی جنرال ډن پورت امریکایی امریکایي لوړپوړي چارواکي نه دی چې په نظامی د کې د طالبانو د بریا او د امریکا د اقرار کوي بلکې د امریکا په خواني ولسمشر اوباما هم د خپل واک په ورستې ورځو کې ویلی وچی چې د طالبانو په وړاندې نشي بریا او دغه جګړې اوس مهال بایلې ده وی د فشارونو په اړه وړاندې زیاتوي چې تر دانپور پور پا کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکولیسن هم ویلی و چې پر طالبانو به سیمایي مذهبي او اقتصادي فشارونه راولي تر څو دوی د سولې خبرو اترو ته چمتو کړي خو د نیکولیسن د خبرو څو میاشتې تیری شوې امریکایانو ټوله هربري په کار واچولې خو طالبان ورستر بل او د هم تر زیاتو ته جنرال جوزوب داسې مهال زړی خبری تکراروي چې د سپینې چارواکی چارواکي ل ډیر غرور ورسته له از ځمکې ته را کښته شول او له طالبانو سره مخامخ خبرو کولو ته یې سر کړ او خپل ځانګړی استازی ظلمی خلیلزاد د همدې لپاره ګمارلی دی مقاله وړاندې لیکي لکه څرنګه چې امریکا تل په نورو هیوادونو کې هم مکر او پریب کړی او په دغه چل اول کې نړیوال شهرت لري نو د دا جنرال ډانپورډ خبرو ته تا طالبان باید زیر شي او د نظامی بریا په څیر باید سیاسي میدان کې هم بریا تر لاسه او له لاری خپل خپلې لاسته باید له نکری ورن د مقالې لیکوال وړاندې لیکي چې د دا جنرال ډانپورډ له خبرو معلومیږي چې د طالبانو یوه بله ازمایشتي دوره پیل کېږي کلدغه دورې بریالی ووتل افغانان به د تل لپاره لېشغال خلاص کړي او خدای مکړه که په دغه ازمایشت کې ناکام شول نو هیواد به متل د نور ترواک لاندې او اولس کلنی قرباني بمو په اوبو لا شي نن تک سیا انلاین په یوه مقاله کې د جنرال دانپورت پر خبرو سره کړیدم یا د ویبانی لیکلي جنرال دانپورت داسې محال د خپل او د طالبانو د بریات سرګندونی کوي چې اوس هم ځواکونه له طالبانو سره په مقاومت لګیا دي او دوی او د دوی تر حمایت لاندې رژیم اوس هم پر طالبانو د بریدونو د زیاتوالي امر صادر کړی دی مقاله وړاندې لیکې دانفورد رشتیا وایي لکه څرنګه چې جنرال دانفورد باور لري طالبان کمزوري نه بلکې تر پخوا لا ډیر ځواکمن شوي دي د مقالې لیکوال زیاتوي له طالبانو سره د مذاکراتی بهیر په که د دا جنرال دانفورد دا خبره تفصیر شي چې له نظامي د طالبانو ماتول ناشونې دي نو باید هغوی تر سیاسي اقتصادي او ټولنیز فشارونو لاندې ونیول شي یو ویروونکی تعبیر لري ویروونکی په دې مانا چې امریکایان له سولهیزو هڅو نه په استفادې سره لا هم غواړي پر طالبانو باندې د زور او فشار له خپلی خپلې غوښتنې هغه فشار چې لتیرو تیرو اوولسو راهیسې له انفجار او تباهي پرته افغانانو ته بله هیڅ ګټه نده سپوتنیک اژانس د امریکایی جنرالانو ورستوی اعترافاتو ته په اشاره لیکې خوانی امریکایی چارواکي وای امریکا باید له افغانستانه د وتلو ابرومندانه لار پیدا کړي د امریکا د دفاع وزارت پخوانی مرستیال وای امریکا باید تر دې حده ونه څو د سفارت لبامه بامه راوتښتیږي غوره دا ده له افغانستانه راو د راوتلو په ابرومندانه لارو چارو غور وکړي سپوتنیک اجانس د امریکای رسنیو په حواله د امریکا د دفاع وزارت د پخواني مرستیال بینکویست له خولي چه چې په افغانستان کې د زرګونو امریکایي اسکرو لوجل وژل کېدو او د دا میلیونو ډالرو له مصرف وروسته امریکا باید د خپلې ابرو لپاره هڅه وکړي چې له افغانستانه خپلې پښې سپک کړي دا پخوانی امریکایي چارواکی دا څرګندونې په داسې محل کې کوي چې طالبانو د مسکو په غونډه کې افغانستانه د بهرنیو پوځیانو ټینګار کړی او ویلدی څو چی بهرانیان په افغانستان کې دوی بخپل جګړې ته دوام ورکړي درنو او قدرمنو اوریدونکو دا و د افغانستان په اړه د یو شمیر انلاین او چاپي رسنیو غوړچند چې تاسو و افغانستان د مطبوعاتو په هنداره کې خبرونه هم دومره و تر بل حغیم او مهربان خدای سپارو شاد او بریالي وسی <تصفيق> داة تفانو غيرت و الولو وتن داة تفانو غيرت دا فانسق دا باتو نجرو وتن باید تو مردآنگی خود بیجوی، این نوری غفلت او جنگ در افغانستان چی اند؟ شرم ما راه جنگ و جهاد را اختیار کرده ایم. اگر راههای سیاسی هدف شرعی ما را نظام اسلامی است. به دست قاورد از قمیر مسلمانان چی باید کرد؟ توجه شما را به بیانیه مفتی صاحب غوری معطوف می‌داریم که بر موضوع مذکور روشنی می‌اندازد. اندازد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و کفا و سلام على عباده اللذین استفا اما بعد قد قال الله تبارک و تعالی لقد كان لكم في رسول الله اصوت حسنت لما كان بجو الله و الاخر صدق الله مولانا العلي العظیم دوستان عزیز چیزی که بنده می به خدمت شما عرضه کنم این است بورد شریعی نشست مسکو دوستان عزیز تبریک در در سندرین اواخر در مسکو یعنی مرکزیت اتحادی شوروی سابق و روسیه یک کنفرانسی بین المللی برگزار شد و در کنفرانس بسیاری از مردم ها شرکت کردن و مقصود از این کنفرانس هم شناخت عوامل و اسباب جنگ در افغانستان و شناخت راها و طریقه ختم کردن جنگ و پایان رساندن اشغال و وجود آوردنی یک حکومت مستقلی در افغانستان و به وجود آوردن صلح و آرامش برای مردم مسلمان افغانستان بود دوستان عزیز درباره همین نشست تحلیلگرها و دوستهای بسیاری هستند شاید تحلیلهایی زیاد کرده باشند در ابعاد مختلف از این نشست سخن‌هایی گفته باشند و بگویند و چیزهایی نوشته باشند و بنویسند اما بنده چیزی که میخواهم به بس شما دوستان برسانم این است که باید ما بودیوی شریعی و جانب شریعی همین مسئله را بررسی کنیم که آیا همین نشست که نماینده های امارت اسلامی افغانستان و مسئولین دفتری سیاسی امارت اسلامی افغانستان در قطر در این شرکت کردند و اعلان موقف کردند آیا ای کار با خود یک ثبوت و یک سند شرعی داره یا نداره کسانی که معتقد به ای هستند که امارت اسلامی یک نظام اسلامی هست و امیر المؤمنین بالای ما یک امیر شرعی و واجب الاطاعت است و ایره می دانند که در مسائل سیاسی سی، امیر حقدار است که مناسب با مشکلات وقت مناسب با ضروریات وقت از روی جنگ و صلحه با ممالک همسایه با ممالک غیر همسایه با ممالک دخیل در جنگ با ممالک غیر دخیل در جنگ معاملات مختلف داشته باشه این حق شریعی است از برای امیر المؤمنین. البته پیش روی از دو دوستا سوالی هم نخواهد ایجاد بشوه اما چون شیطان دشمن اصلی انسانها به اعتبار اسلامیت است و دشمن امارت اسلامی هست چنانچه در زمان نبی کریم صلی الله علیه وسلم در ذهن مردم وسوسه اندازه میکرد و تشویش اندازه میکرد. های اعتراضات بر علیه عملکردهای پیغمبر علیه الصلاۃ سلام برای مردم نشان می‌داد که آنجی دوستان شاهد هستند که در تحویل قبله و در مسالهی بعض جنگ ها اعتراضاتی از طرف کفار بالای مسلمان‌ها میشد اما عادت و قانون الهی است که اعتراضات آنها مستقیما با قرآن مجید یا به توسط پیغمبر علیه و السلام جواب گفته و حقیقت را برای مردم روشن ساخته تا اونکی اهل انصاف و اهل حق و کسانی که واقعا طالب حق هستند طلبگار و طرفداری حق هستند بعد شنیدن و دانستن دلیلی حقیقت حق و حقیقت را به اما کسانی که متعصب هستند کسانی که معاند هستند به همان اناد و تعصب و زدیت خود ادامه می دهند با وجود شنیدن دلیل حق حق را نمی پذیرند و با بحانه های مختلف رنگ حق را به مردم دیگرگون نشان می دهند و حق را به صورت باطل و باطل را به صورت حق می به مردم آشکار بکنند قناعت دادنی اون مردم وظیفه اهل حق نیست مسئولیت اهل حق نیست و اون مردم قناعت هم نمی کنن. اما روشن کردن حق وظیفه اهل حق است. چنانکه خداوند در تحویل قبله میفرماید يكون للناس علیکم حجه إلا الذين ظلمو منهم فلا تخشوهم وخشون خداون تحویل قبله را بیان کرد تا آنکه از برای مردم دلیل و اعتراضی بالای شما نباشد الا الذين ظلمو منهم مگر کسانی که ظلم کردند تعصب و اناد کردند با وجودی که حقانیت حق می دانند دلیل حق می اما با آن هم تعصب و اناد لیکن او مردمی که شکار تعصب شدند، شکار عناد شدند، قناعت دادنی اونها مسئولیت شما نیست، شما از اونها بی نداشته باشین. از خدا بترسین. ما هم درباره روشن ساختن و واضح ساختنی بعضی از پالیسی های امارت اسلامی که توسط دشمنان اسلام در بین مسلمان ها تبلیغات سوی میشه و از موقع استفاده کرده کوشش میکنند که ذهنیت جوانای مسلمان دیگرگون بسازند جذبه جهادی مسلمان های ما را خاموش بسازند به خاطری خونسا کردن همین تبلیغات شیطانی مسئولیت دینی داریم که باید هر عالم به قدر توان خود متوجه باشه در کلام بخش و کدام ای از پالیسی امارت اسلامی که از طرف دشمنای اسلام مورد حملات فکری قرار میگیره یا اونا کوشش میکنن که یک استفاده کنند باید علماء کوشش کنن حق مردم روشن بسازن کسانی که طلبگاری حق بودن، طرفداری حق بودن، طالبی حق بودن از شنیدن دلیل حق، حق را میپذیرند و کسانی که معاند بودن، زدی بودن، خودخوا بودن تاوع نفس و هوا و خواهشات خود بودن، آنها هرگیز آماده پذیرفتن حق نمیشوند و دلائل روشن و واضح حق با دلایل بسیار رکیک و ضعیف و احتمالاتی بسیار ناچیزی میخواهند رد بکنند اما با آنها باید ما پروا نداشته باشیم از جمله چیزهایی که امروز در زمان ما و شما سبب تشویش در افکار یک دسته جوانها به واسطه ای تبلیغات زهراغینی دشمن میشه همچنان نشست هاست شاید درباره همین نشست کسانی از موقع استفاده کنند و ای اعلان کنند که امارت اسلامی با وجودی که 17 سال با آمریکایی ها جهاد کرد چقدر در افغانستان مجاهدین شهید شد چقدر مجاهدین معیوب شد چقدر مجاهدین امروز در زندان های دشمن اسیر هستند اما با اون هم امروز امارت اسلامی نماینده های خود در مسکو روان کرده مسکوی که دستی از او با خونی بیش از دو ملیون شهید افغانستان رنگ است با همو مسکو و همو دست کفاری دیگهی که در کنفرانس شرکت کردن اینها هم شرکت کردند پس از این معلوم میشه که امارت اسلامی کاملا متوجه رسیدگی به امور مسلمان ها و غمخاری مسلمان ها نیست و ای سخنها در بین مردم احساسات جوانای ما را دیگرگون می سازه. جذبه و شوق جهاد مجاهدین ما را شاید بعضی مجاهدینی که علم ندارن و چندان دورندیش و فکر کننده در مسائل هم نیستن شاید در نظر اولی افکار آنها را دیگرگون بسازه. و آنها شاید متردد بشوند که ایچی شد. امارت اسلامی چندین سالها با کفار جنگ کرد با یک کافر می و با کافری دیگه نشسته گپ میزنه. این چه مفهومی داره؟ چه معنایی داره؟ ما باید حقیقت این مسئله را از بود شرعی از سنت و سیرت نبی کریم صلی الله علیه و وسلم بیان کنیم تا به همه معلوم شود که الحمدلله پالیسی امارت اسلامی یک پالیسی سیاسی اسلامی و مطابق با سیرت نبیوی صلی الله علیه و وسلم است. دوستان عزیز شرکتی نماینده های سیاسی و مسئولین دفتر سیاسی امارت اسلامی در کنفرانس مسکو به معنی تسلیم شدن با مسکو به معنی تسلیم شدن و تندادن به خواهشاتی آمریکا و یا شوروی و یا هیچ مملکتی از مملکت های دنیا نیست بلکه شرکت کردن و روان کردن نماینده های سیاسی در همین کنفرانس بیانگری ای هست كي إمارة إسلامي فقد وفقد بطريقه نبي كريم صلى الله عليه وسلم روان است إمارة إسلامي از يكس سلحي كي موافق با أصول شريعت مقدس إسلام باشه مخالف نيست إمارة إسلامي هميشه خوهان السلحي هست كي موافق با شريعت باشه أما يكي بنام السلح دعوة تسليمي كي دولت وامريكا دارن سخن در حق دور است و امارات اسلامی با گذشت چندین سال جنگ و مشکلات و سختی را تحمل کرده لیکن آرزوی آمریکا و دولت جمهوری افغانستان نفی کی اشتراک با صلحی که خواسته اونهاست باشه یک دسته از دوستها شاید فکر کردن یا فکر بکنن که دولت و آمریکا همیشه خواستار صلح است اما امارات اسلامی چرا خواستار صلح نیست امارات اسلامی با فرستادن نماینده‌های خود در این کنفرانس به تمام دنیا واضح ساخت به تمام دنیا آشکار ساخت که ما طرفدار صلحی هستیم که واقعی سلح باشه ما طرفدار سلحی هستیم که مطابق با شریعت اسلام باشه ما طرفدار صلحی هستیم که با او عزت ها باشه ما طرفدار صلحی هستیم که با او گذاری با خون شهدای ما با زحمات و تکلیفی که مجاهدین ما دیدن با او یک قدردانی باشه با او یک قیمت گذاری باشه و او را به چشم احترام دیدن باشه اما صلحی که به بمع... ما لفظ صلح باشه و به معنا تسلیمی زیر پا کردن خون شهدا، زیر پا کردن زحمت و تکالیف و رنج و مشکلات مجاهدین باشه او صلح ما هیچ وقت نپذیرفتیم و نمیپذیریم و دیگر موقف خود امارت اسلامی اعلان کردند که ما خاطری آزاد شدن افغانستان از اشغال کفار و بخاطر به وجود آوردن یک حکومت اسلامی در افغانستان می جنگیم. این مسئله به این معنا نیست که امارت اسلامی خواهان حاکم شدن دین خدای تالا در دیگر ابعاد زمین در دیگر جوانب زمین در غیر افغانستان در دیگر جهان نیست. و ای به ای مفهوم و به ای معنی نیست که عمارت اسلامی فقط آمریکا را به چشم کفر می بینه دیگه کفارر به چشم کفر نمی بلکه ای به ای معناست که عمارت اسلامی مطابق با همو سیرت و سنت نبی کریم صلى الله عليه وسلم روان است ک نبی عله اللا وسلام در ده سال زندگی مدنی خود اوره عملی عليه سم در غزوه خندق نماینده روان کردن به طرف کلانهای بنیغتفان و از اونا خواستن که از شرکت در جنگ دست بردار بشویم مقصود ما از همین جنگ آزاد ساختن این مدینه از سلطه کفار است و مقصود ما به وجود آوردن یک حکومت اسلامی در مدینه هست و کسایی که با ما مشکل جورو نکنند ما با آنها مشکل جور نمی کنیم بنی قتفان همسایه های نبی علیه الصلاۃ والسلام بودند شریک در جنگ هم بودند نبی علیه الصلاۃ والسلام بیان موقف کردند نماینده روان کردند با اونا گفتند موقف ما این است که مقصود ما آزادسازی مدینه از اشغالی کفار اشغالگر است. مقصود ما به وجود آوردن یک حکومتی اسلامی در مدینه هست مقصود ما دفع ضرر از همسایه‌های ما هست ما نمی‌خواهیم به یکی از همسایه های خود ضرر برسانیم تا زمانی که اونها اقدام به زرنی ما نکنند. شما اگر چی در ابتدا به جنگ شرکت کردین بازم اگر شما از همین شرکت در جنگ دست بردار بشوید و رفته به خانه‌های خود بشینید ما آماده هستیم که با شما صلح کنیم. حتی از حاصلات مدینه شریف با شما سالانه چیزی می دهیم به شرطی که شما از شرکت در جنگ دست بردار بشوید این مسئله را تمام کتاب های سیرت نوشته کردند. و این مسئله ثابت است که نبی علیه السلام همچه تصمیم می ره گرفتن و نماینده را پیش غطفان روان کردند با کلونهای غطفان دیدن کردن موقف نبیه السلام و السلام بیان کردن و آنها همین موقفی نبی علیه السلام رفتند آماده شدند که با نبی علیه صلح کنند اما وقتی که نبی علیه السلام با بزرگهای مردم مدینه مشورت کرد آنها گفتند که یا رسول الله این قطعی است یا به خاطر شفقت شما به ما نبی علیه السلام گفت نه به خاطر شفقت ما به شماست که شما در جنگ خسته شدید و فشارهای جنگی سر شما زیاد است آنها گفتند پس اگر ای تو باشه که امر قیطی نباشه، امری باشه که ما در از او اجازه مشوردهی داشته باشیم. ما اصلا با بنی سلح نمی کنیم بلکه و اونها تا آخرین لحظه زندگی می جنگ. شما ببینید نبی علیه صلی بیان موقف کردن با بنی بنیغتفان. و ای بیان موقف نبی علیه صلی خلاف شریعت نبود. امروز امارت اسلامی، بزرگای امارت اسلامی در رس امیرالمؤمنین حفظه الله مصالحی که نبی کریم صلی الله علیه وسلم با مردم مدینه شفقت کردند و خواستند که فشارهای جنگی بالای مردم مدینه کم بشود، بنی قتفان اطمینان دادند، موقفی خود اعلان کردند. امارت اسلامی هم خواستاری است که فشارهای جنگی سری های افغانستان کم بشود. های خود در کنفرانس روان کرد و بیان موقف کردند که ما فقط می خواهیم که با اشغالگرانی که سری خاک ما حمله کردند و حکومت اسلامی ما خواستند که از بین ببرند و می که در ملک ما یک حکمت اسلامی نباشه ما با آنها میجنگیم و استقلال و آزادی را به دست می آوریم. اما همسایه های ما که در اطراف ما هستند با آنها ما کاملا اطمینان می دهیم که ما به شما ضرر نمی رسانیم تسمیمی رسانی به شما نداریم شما از جنگ با ما دست بردار بشوید هر همسایهی که سری ما حمله نکنه در همی اشغال و حمله کفار قریش بالای مدینه شرکت نکنه. به جای خود بشینه ما هم با او معامله نیکی داریم با او جنگ نمی کنیم از روی تعامل نیک رفتار می آیا اگر ما امروز فکر کنیم روان کردن نبی علیه و السلام و چند نفری به عنوان نماینده و بیانی موقف کردن در مقابل کفار غطفان از همین روان کردن نماینده های سیاسی مالت اسلامی در کارنفلانسن مسکو چه مشکلی داره؟ بنی راتفان رسما در جنگ شریک بودند مسکو سابق با ما جنگ داشت و الحمدلله که به جنگ خود شکست خورد ناکام شد مجاهدین کامیاب شدند از ارکاده خود پشیمان شد بعدا آمریکا حمله کرد فعلا ما در زمان مقابله با امریکا قرار داریم مسکوی که سابق سر ما حمله کرده بود با ما جنگیده بود و در جنگ شکست خورده بود و رفته و پشیمان است اگر امروز امارت اسلامی او را اطمینان بدیه که تو سری ما حمله نکن و تو کوشش کن با ما همکاری کن تا همه کفاری اشغالگر و متجاوز شکست خورده و از افغانستان بیرون بشوند ما ورده میسپاریم که به تو ذر نمیرسانیم آیا این موافقی پالیسی نظامی و سیرتی سیاسی نبی علی السلام است یا موافق هر کس فکر کنه می دانه که موافق است اما چون به سوال سیرت در بین ما کمتر استعمال میشه علما و طالبا در مسائل سیرت و توجه به کتابهای سیرت و مطالعه سیرت کمتر کوشش دارند به همین خاطر زیادتر طالبایی ما که مردم مخلصی هستند مجاهدین واقعی هستند چون علم در زی مسله ندارند در همچو زمانها در روبرو شدن با همچو کارها یک دم زیری تأثیر می روند و شکاری تبلیغات دشمن میشوند و از طرف داخل نفس شیطان در ذهن اونها کار میکنه اونها را مشوش و دیگر گون می پس باید دوستای ما متوجه سیرت نبی علیه و سلام بشوند و سیرت نبی علیه صلی و سلام به حیث یک الگو و به حیث یک راهنمای کامل خود شناخته و اقیده داشته باشه و خود خبر بکنند پالیسی امارت اسلامی رو با سیرت نبی علیه السلام و اسلام مطابق گردانند که آیا برابر است یا مخالف؟ وقتی که مطابق کنند یقینا می‌دانند که ای پالیسی پالیسی است با سیرت نبی السلام موافق از همو شفقت و رحمت سرکشمه می گیره که نبی در حق صحابه مدینه داشت. و دوم نبی کریم صلی الله علیه و سلم زمانی که تصمیم گرفتن در مکه شریف بروند و به بیت الله شریف تواف بکنند وقتی که نزدیک شدن و خبر شدن که قریش آمادگی جنگ گرفتن و یا فکر کردن که شاید قریش اگر ما بریم با ما درگیری جنگ بشود حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه روان کردن که در مکه شریف برو و به پارلمان قریش بیان کن موقف ما رو بیان کن که موقف ما جنگ با شما نیست موقف ما طلب جنگ نیست موقف ما در حرم شریف خوندیدی نیست موقف ما فقط عضای حج عمره هست و موقف ما اعدا کردن یکی از شعار دین است پس شما ما را بگذارین تا ما همی مقصود خدا حاصل کنیم امارت اسلامی هم امروز در کنفرانسی بین المللی مسکو نمایندههایی خود روان کرده و موقف خود اعلان کرده که مقصود ما استقلال و آزاد نمودن افغانستان است و به وجود آوردن یک حکومت اسلامی در افغانستان است مقصود ما فقط جنگ و فقط خونریزی نیست مقصود ما به وجود آوردن یک حکومت اسلامی هست پس شما با ما همکاری کنید کسایی که شریک جنگ نیستین با ما همکاری کنین و ای مردمی که با ما در جنگ هستن اینا رو باعث شوین که از جنگ دست بردار بشوند به اشغال خود خاتمه بدهند و ما را بگذارن که در ملک خود یک حکومت اسلامی را به وجود بیاریم و همچنین امریکا را گفتن که ما مخالف صلح نیستیم ما طرفتاری جنگ نیستیم ما از طرف شما مجبور به جنگ شده ایم اگر شما ما را مجبور به جنگ نکنین ما فقط طرفداری استقلال و آزادی اسلامی خود هستیم خواهان و طرفداری به وجود آوردن یک حکومت اسلامی هستیم و خواهان حاکم نمودن نظام الهی هستیم پس اگر شما از جنگ با ما دست بردار و ما را بگوذرید که ما در ملک خود یک حکومت و یک اداره اسلامی را به وجود بیاریم و مستقل و آزادانه به قوانین اسلام خود زندگی بکنیم ما با شما مشکل ایجاد نمی کنیم شما از اشغال و از مخالفت و از جنگ دست بردار بشوین ما هم طرفدار جنگ نیستیم سبب اصلی جنگ علت اصلی جنگ شما هستین شما ما را باعث به جنگ می شوین اگر شما ما را باعث به جنگ نشوین مقصود ما فقط عبادت خدای تعالی به وجود آوردن یک حکومت اسلامی و عذا کردنی بندگی خدای تعالی از عزیز وقتی که این دو قصه از قصه ها ما متوجه بشویم این دو واقعی که در سیرت نبی علیه الصلاه و السلام بسیار مشهور هویداست داست متوجه بشویم پس میدانیم که شرکت نمودن نمایند های سیاسی امارت اسلامی در کانفرانس مسکو که یک کنفرانس بین المللی برگزار شده خاطری شناختی علت اصلی جنگ و بخاطر شناختی نقطهی به پایان رساندن جنگ و اشغال و ظلم استم در افغانستان در حقیقت ای چیزی نوی نیست و ای کاری نیست که خدا نخواسته سبب نادیده گرفتنی خون شهدا باشه سبب نادیده گرفتن رنج و زحمت و تکالیف مجاهدین باشه سبب نادیده گرفتن با وجود آوردن حکمت اسلامی باشه سبب نادیده گرفتن سیرت نبی کریم صلی الله علیه و باشه بلکه این اعلان موقف یک کاری است که در حقیقت پیروی امارت اسلامی را از سنت کامل نبی کریم صلی الله علیه و به ما واضح و روشن می‌سازد و ای را به ما واضح میسازد که در زمان ما در تمام دنیا یگانه حکمت و یگانه امارت و یگانه نظامی که تابی سد سدی و پیروی سنت و سیرت نبوی هست فقط و فقط امارت اسلامی هست امارت اسلامی مانندی پالیسی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اعتبار پیروی کردن از سنت و سیرت نبی علیه صلی و السلام دو چیز پیش رو گرفتن. هم مقابله و مبارزه نظامی و هم مقابله و مبارزه سیاسی سی. تنها در مبارزه سیاسی سی سی قرار ندارن مثالی که بعضی از جماعت های اسلامی هستند و تنها در مقابله نظامی هم قرار ندارن مثالی که بعضی های دیگه هستند بلکه امارت اسلامی یگانه نظامی هست که کاملا پیرو سنت نبی علیه و است سنت نظامی و سنت سیاسی سی سی نبی کریم صلی الله علیه و سلمه تابدار و پیرو است در ضرورت جنگ در وقت جنگ مالند نبی کریم صلی الله علیه و وسلم طرفدار و خواهان دفاع از دین مقدس اسلام است اما در زمان صلح خوهی کامرن خواهان یک صلح هست که موافق با دین مقدس اسلام باشه موافق با عزت و احترام با مقدسات اسلامی باشه یک دی یک صلح باشه که در زو مسلمان ها اجازه داشته باشند که از خود حکومتی داشته باشند، از خود استقلالی داشته باشند. اگرچه که در همه زمین هم نباشه مثالی که نبی علیه السلام با کفار قریش تلحه کردن که ما فقط در مدینه حکمتی اسلامی داریم ما با شما کار نداریم شما با ما کار نداشته باشین شما در جای خود باشین ما به با جای خود هستیم پس ضرور نیست که در ابتدا باید رهبرای یک تنظیم جهادی یا بزرگهای یک تنظیم جهادی از ابتدا با اذهمی اعلان داشته ورسن که ما با همه کفار دنیا درگیر جنگ هستیم و همه با ما دشمن هستند و, و ما با همه جنگ داریم بلکه ای اعلان و این پالیسی مخالف سیرت نظامی و سنت سیاسی نبی کریم صلی الله علیه و سلم است راستو سای عزیز چون از یک طرف در حال سفر هستم و از طرف دیگر کمتر مشکلات و چیزی که فعلا در ذهن ما آمده بود امیر با شما شریک ساختم امید است که دیگه دوستها بیشتر متوجه شوند دلایل و حقایق بیشتری را واضح و روشن بسازند تا که خداوند جلو و علاشانه او بخواهد سببی جله از شکوک و شبهاتی بشویم که از طرف شیطان‌های انسی و جینی در ذهن و در فکری یک دسته مجاهدین و یک دسته جوانان مسلمانی ما انداخته می‌شود و خداوند کنه که ای سخنهای ما و شما کوشت ها و زحمت ما و شما سببی بیشتر روشن شدن حق به ای دوستا بشه و سببی خلاصی از این دوستا از مکر و از کمینی نفت و شیطان بشه قلب غافل لا یقی اسرارنی قلب غافل لا یقی اسرارنی غیرت مردانگی در خود بی جوی تن متا یک حنا در بازارنی نوری حقاری از انداخت برآ آن. لا يقي أسراره قلب غافل لا يقي أسراره كعبي دل راز بتهافك كعبي دل خانی هق لا یقی احجار میس قلب غافل لا یقی اصرار میس خانی حق لا یقی احجار نیس قلب غرف لا یقی اصرار نیس غیرت مردانگی در خود حق تر بلې هغې چې بیا په خدمت کې حاضریږو تاسو په لوی او متعال دی سپارو